دنیای دیزنی خوبه گفتم که پارک تفریحی نه میدونم گفتید اما فقط ترن هوای و چرخ فلک نیست توی فلوریدا استرییوی فیلم و مرکز علمی هست واقعا خیلی چیزای آموزنده داره <تصفح> گمون نکنم مرد سی و پنج ساله که روزی مدیر شرکت بود به چیزای آموزنده احتیاج داشته باشه. دستوری توان خواهان همه ی و کنارش هست کار هم مراقب همه چیز هستن هیچ مشکلی پیش نمیاد لابد بعدشم بعدش هم میخواید بگید وسیله ی بازی مخصوص معلولان هم هست که میتونه سوارشه بله برای هر جو شرایطی امکانات دارن دو زکلار. چرا فلوریدا رو امتحان اگه خوشتون نمی میتونید به سی وورد برید هوا هم عالیه <تصفح> ویل کنار وال وحشی من میدونم کی بازند است انگار اصلا به من گوش نمیداد. یکی از بهترین جاهاییه که توان خواهم میتونم برن. میدونید که برای افراد رو به مرگ یکی از بهترین مؤسسات آرزو کنه. روبه به مرگ نیست. ویل وارد اتاق شد و من تلفن را رو رو روی کارمند آژانس مسافرتی قطع کردم. گوشی دستم بود و دست پاچه شده بودم. ناشیانه گوشی را سر جایش گذاشتم و دفترچه یاد داشتم رو بستم کلارک همه چیز رو به راهه؟ لبخند زدم <تصفح> آره خوبه لباس مناسب داری؟ چی؟ چه برنامهی برشن داری؟ منتظر جواب بود ذهنم پیش بالهای وحشی و کارمنده آژانس بود هیچی؟ پاتریک تمام روزو نیست تمرین داره چرا میپرسی؟ قبل از اینکه جواب بدهد لحظاتی مکس کرد. مثل اینکه از دل خوشحال بود که درد قافل گیر می کند. بریم جشن عروسی؟ هیچ وقت دقیقا نفهمیدم که چرا ویل تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت به جشن عروسی آلیسیا و روپرت برود. حد زدم در این تصمیمش لجاجت و یک دندگی نقش زیادی ایفا می کند. کسی انتظارش را نداشت، دستکم خود آلیسیا و روپرت شاید هم بالاخره می به با آنها ارتباط برقرار کند. با این همه به گمان من در این چند ماه اخیر، موضوع آلیسیا از دبوتا به خود افتاده بود و دیگر نمیتوانست چندان باعث آزار ویل شود. من و ویل فکر کردیم که بدون کمک نیتن از اوdetach برمیاییم. تماس گرفتم تا مطمئن شوم محل عروسی مناسب صندلی چرخدار است. ظاهراً آلیسیا وقتی فهمید دعوتش را پذیرفته ایم، عصبی و دستپاچه شد. طوری که به فکرم رسید کارت دعوتش فقط برای حفظ ظاهر بود. آلیسیا با صدایی که به تدریج ضعیف می شد گفت فقط چند پله کوچولو دارد ولی کارکنانش می توانند سطح شیبدار بگذارند. گفتم، گفتم:عالی متشکرم روز عروسی می بینم با خرید اینترنتی هدیهی ای تهیه کردیم ویل 120 پوند برای یک قاب عکس نقره داد شست پوند هم برای گلدانی که می گفت چیز کاملا مزخرفی است. تعجب کردم وقتی دیدم چون این مبلغی را صرف کسی کرده که اصلا دوستش ندارد. اما از همان چند هفته اولی که برای خانواده ترینر کار کردم، فهمیده بودم که تعبیر آنها از پول با تعبیر من خیلی فرق دارد. تصمیم گرفتم پیراهن قرمزم را بپوشم. بخشی به این خاطر که می دانستم بید از این لباس خوشش می آید. حالا می دانستم هر چیزی که روحیش را تقویت می کند باید کند. از طرفی هم لباس بهتری نداشتم که بتوانم در چنین مجلسی با اعتماد به نفس کامل بپوشم. روح ویل هم خبر نداشت که من چقدر از حضور در چنین مجلسی واهمه دارم. اینکه به عنوان پرستار بروم، جای خود داشت. هر بار که یاد پچپچهای آزاردهنده و نگاه های که به طرف ما میشد شد می ترجیح می دادم که به جای عروسی بروم و پاتریک را تماشا کنم که می دود. شاید واقعا از ضعفم بود که به چنین چیزهایی اهمیت میدادم ولی دست خودم نبود از فکر اینکه سایر مهمانان به ما نگاه کنند حالم بد میشد چیزی به ویل نگفتم اما نگرانش بودم رفتن به عروسی دوست دختر سابق در حالت عادیش هم عملی از سر آزار طلبی است. اما حضور در جمع عمومی جایی که پر از دوستان و همکاران قدیمی است و دیدن ازدواج دوست سابق به نظر من نشان میداد که ویل بیشک در مسیر افزردگی قرار گرفته است روز قبل از عروسی تلاش کردن ترتیب برنامه دیگری را بدهم ولی ویل اعتنایی به من نکرد و گفت: کلارک، من نگران چیزی نیستم چرا تو باید باشی؟ به ترینا زنگ زدم و جریان را گفتم تنها حرفی که زد این بود صندلی رو نگاه کن که مواد ویروس سیاه زخمی یا مواد منفجره به خودش ببره اولین باری که راه به این دودی میبرمش بدجوری وحشت برم داشته شاید فقط میخواد فراموش نکنه که چیزای بدتر از مردن هم هست آره؟ <تصفيق> چه مسخره؟ خب خوش بگذره آها راستی اون پیرن قرمز رو نپوش چاکه زینش زیادی بازه صبح روز عروسی آسمان تابناک و مطبوع بود. چیزی که خودم از قبل می دنستم. دخترهای مثل آلیسیا همیشه کار خودشان را می کند. وقتی این حرف را به ویل گفتم گفت کلارک بد جوری تو ریختی. از خوبان یاد گرفتم. نیتن زودتر آمد تا ویل را آماده کند. در نتیجه می توانستیم قبل از ساعت نه حرکت کنیم. با ماشین دو ساعت راه بود البته با محاسبه ی توقف های کنار جاده مسیر را با دقت بررسی کرده بودم تا مطمئن شوم به بیشترین امکانات دسترسی داریم. رفتم توی دستشویی و جورا پوشیدم. پاهایم را هم تازه اصلاح کرده بودم. صورتم را آرایش کردم ولی بعد از ترس اینکه مبادا آدم حسابی های مجلس فکر کنند من دختر تلفنی هستم آرایشم را پاک کردم. جسارت به خرج دادم و دستمال گردن دور گردنم نبستم. اما با خودم اشارب آورده بودم تا هر وقت حس کردم بیش از حد جلب توجه کردم روی شانه بیاندازم. نیتن کنار ایستاد و گفت بد نشده نه؟ ویل شلوار مشکی و پیراهن آبی کدر با کراوات پوشیده و صورتش را ستیقه اصلاح کرده بود. چهرش کمی به رنگ برونزه درآمده بود. چشمانش بر اثر نکاس رنگی پیراهن روشنتر به نظر میرسید و مثل خورشید می درخشید. گفتم: نه بد نشد نمیدانم چرا نمیخواستم بگویم واقعا خوشتیب شده شک نکن پشیمون میشه که چرا داره به اون عوضی اعری ازدواج میکنه ویل سرش رو بالا گرفت و گفت نیتن همه چیز توی س گذاشتی؟ نیتن به طرف ویل برگشت و گفت: آره، تمام وسایل گذاشتم. آماده حرکت. فقط ماچو بوسه با ساغ دوشه عروس ممنوع. من گفتم: انگار اینم میخواست ماچو بوسه کنه. یقی همهشون چینچینی و بوی اسب میدن. پدر و مادر ویل برای بدرقه آمدند. به نظرم میرسید همین الان دعوا کردند. خانم ترینر طوری میستد که کنار شوهرش نباشد دستش را محکم روی سینه به هم گلاب کرده بود حتی وقتی دنده اقب رفتم تا ویل سوار شود یک بار هم نگاهم هم نکرد به من گفته بود لویزا، حواست باشه تو خوردن زیاده روی نکنه مثلا داشت پرسای روی شانه ویل را میتکند ویل گفت چه اشکالی داره؟ من کرانم دیگه نمیکنم؟ پدرش گفت آره درست میگی من خودم همیشه باید یکی دوتا لیوان بالا بندازم تا بتونم تا آخر مجلس دوون بیارم خانم ترینر زیر لب ولی طوری که شنیده شود به ویل گفت عزیزم خیلی زیبا شدی زانو زد و دنپایی شلوار ویل را صاف کرد حسابی خوشگل شدی از پشت فرمان بیرون آمدم آقای ترینر نگاه تاییدآمیزی به من انداخت و گفت: تو هم خوشگل شدی. خیلی تو دل برو. لویزا، پای چرخی بزن برای ما. ویل صندلی چرخدارش را حرکت داد. بابا دیر شده. کلارک، زودتر راه بیافتیم. خوب نیست بعد از عروس برسیم. نفس راحتی کشیدم و پشت فرمان نشستم. ویل هم سوار شد. کتشی کش مرتب و صاف به گیره سندلی مسافر آویزان بود تا چروک نشود. راه افتادیم. می توانستم دقیقا به شما بگویم که خانه والدین آلیسیا چگونه جایی است؟ طوری که انگار قبلا آنجا رفتم؟ در واقع وقتی اتومبیل را آهسته کردم خیال هم چنان قوی بود که ویل پرسید چرا می خندم؟ خانه کشیش منطقه به سبک قرن هجدهم با پنجره های قدی که بخشی از آن را نوعی پیچک پوشنده بود و مسیر اتومبیل را با سنگریزه های نخود رنگ خانه کاملا مناسب برای سرهنگ ارتش حتی می توانستم او را مجسم کنم که در آن خانه بزرگ شده است با دو گیسه بلند طلایی روی چمنها سوار اولین اسب پاکوتاهش است دو نفر با جلیقه شبنما اتومبیلها را به محبته بین خانه و کلیس کنار شداییت میکردند شیشه را پایین دادم و پرسیدم: کنار کلیسا جای پارک هست؟ خانم مهمونا از این طرف ما صندلی چرخدار داریم اینجله جله چمن گیر میکنه. باید جای نزدیک کلیسا باشه من میرم اونجا دو مرد نگاهی به هم انداختند و نجوایی کردند پیش از اینکه چیزی بگویند من حرکت کردم و رفتم کنار کلیسا پارک کردم جایی که توی دید نبود با خودم گفتم شروع شد ماشین را خاموش کردم چشم من و ویل از توی آینه عقب به هم افتد. کلارک آرون باش. چیزی پیش نمیاد. خیالم راحته. ام... چرا فکر میکنی نیستم؟ بر اینکه که قیافت داد میزنه. تازه تمام مدتی که راهندگی میکردی حسابی ناخون میخوردی. خب. امروز کدوم بازی میکنیم؟ ویل رد نگاه هم رو دنبال کرد. راستش رو بگم؟ آره، باید بدونم. لطفا نگو شک و بهد بگو ببینم چه نقشه خطرناکی کشیدی. چشمان ویل به چشمان من گره خورد. چشمان آبی و مرموزش که نمیشد چیزی از آن خواند بد جوری دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. کلارک، ما امروز مثل آدم رفتار میکنیم. طوری که کسی باورش نشه. دلشورم بیشتر شد، انگار توی دلم رخت می شستند. خواستم چیزی بگویم که پرید وسط و گفت ببین، هر کاری که به ما خوش بگذره می کنیم رفتن به عروسی دوست دختر سابق، دردش حتی کمتر از جراحی رودکانال است به هر حال خواست خودش بود، روز خودش بود نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم بر خودم و شوم. برای چهاردهمین بار اشارپ را روی شانم صاف کردم و گفتم با یک استثناء. چی؟ اگه بخوای عدای کریستیبران را در بیاری من برمی گردم خونه و تو رو اینجا با این گنده دماغا تنها می زارم. ویل حرکت کرد و به طرف کلیسا رفت. به گوشم آمد که گفت زده حال. هیچ مشکلی پیش نیامد و ما نشستیم. همانطور که فکر میکردم آلیسیا خوشگل شده بود. پوست کاراملی رنگش برق میزد. پیراهن ابریشمی شیری برشدار اندام ظریفش را میپوشند و کیپ تنش بود. همینطور که از بین ردیف نیمکت ها عبور میکرد نگاهش کردم. از خودم میپرسیدم قد بلند و پاهایی چنین کشیده چه احساسی به آدم میدهد. شبیه به آن را اغلب در پسترهای رو توش شده میدیدیم. دلم میخواست بدانم زیر لباسش گن پوشیده یا نه؟ البته نه. حتما لباس زیر ظریف و نازکی پوشیده بود که خودش کار گن را میکرد و نیازی به پوشیدن چیز اضافی نداشت. از آن نوعی که قیمتش معادل یک هفته حقوق من است. وقتی کشیش و وراجیش را میکرد و ساق دوش کوچک عروس با کفش باله روی نیمکت نشسته و وود میخوردند من نگاهی به اطراف و مهمانان انداختم تقریبا همه زنها شبیه به زنانی بودند که آدم در صفحات مجله های لوکس میبیند. کفششان که هم رنگ لباس بود، انگار دفعه اول بود میپوشیدند. زنان جوانتر کفش پاشنه بلند ده دوازده سانتی به پا داشتند و ناخونهایشان را به ترس زیبایی مانیکور کرده بودند. موسنترها کفش پاشنه 4 سانتی و کت و دامن خوش دوخت با سرشانه های اپلدار و آستری ابریشمی در رنگهای های متضاد پوشیده و کلاهی روی سر گذاشته بودند که انگار منتظر بودند تا با اوضاع وخیمی مقابله کنند. مردها کمتر قابل توجه بودند اما تقریبا همهشان حس و حالی داشتند که من گاهی در ویل می دیدم. ثروت و اعتبار و این حس که روزگار همیشه به کامشان خواهد بود. به شرکت هایی که اداره می کردند و دنیایی که در آن به سرمی برددن فکر میکرد دوست داشتم بدانم به افرادی مثل من هم توجه می کنند چه کسی از بچه نگهداری می کند. یا در چه رستوران‌هایی غذا می‌خورند، یا چه کسانی برای همکاران تجاریشان رقص میله می کنندند؟ یاد مصاحبه هم در اداره کاریابی افتاده بودم. عروسی هایی که من می‌رفتم معمولا فامیل عروس و داماد را جدا از همین نشانند از طرز اینکه مواد افراد فضول دست بکار شوند مراسم عقد تمام شد و ویل راهش را به سمت در خروجی باز کرد من از پشت سر نگاهش می کردم محترم و شریف و فوقالعاده با وقار و متین دوست داشتم می حالا که آمده هنوز هم فکر می کند حضور در جشن عروسی کار است یا اینکه پشیمان شده آیا هنوز هم به او احساس دارد؟ دوست داشتم به او می گفتم که برای سر آن زن پوست کاراملی احمق زیاد بود. حالا زواهر هرچه می خواستن بگویند. خیلی چیزهای دیگر بودند که دلم می بگویم. قصدم فقط روحیه دادن به ویل بود. به ویل گفتم خوبی؟ با همه این اصاف اصل موضوع خودش بود و احساسش. چند بار پلک زد و گفت خوبم. نفسش را طوری بیرون داد که گویی مدتی نگه داشته بود. سرش را بالا گرفت و نگاه هم کرد. بیا بریم نوشیدنی بخوریم. محل برگزاری جشن محوته محصوری بود با دروازه آهنی فرفرژه و حلقه های به همبافته گلهای صورتی کمرنگ. بار در انتهای محوته بود و پر از آدم. از لابلای میزهایی گذشتم که رومیزی کتانی سفید داشتند و انباشته از کارد و چنگال و ظروف بلوری که من به عمرم ندیده بودم. سندلی ها پشتی طلایی داشتند. از مدلی که آدم در سالن‌های مد میبیند. فانوس سفیدی بالای گلهای سوسن و فریزیهی وسط میزها آویزان بود. فضا آکنده از اطر کلها بود. به حدی که احساس خفگی به من دست داد. وقتی نوبتم شد به متصدی بار گفتم دو دوتا لطفا. مرد لبخندی زد و گفت انواع دیگه ای نوشیدنی بعدن سرو می شود. دوشیز دوار خواستن که با این شروع شود. حالت نگاهش به من کمی مرموز بود. از ابرویی که بالاداد فهمیدم در ذهنش شمی گذارد. به نوشیدنی لیموناد صورتی نگاه کردم. پدرم می گفت سروتمندها خوشتر از همه هستند. اما من تعجب کردم وقتی دیدم پذیرایی جشن را با الکول شروع نکردند. لیوانها را گرفتم و گفتم باید هم صرف شود. ویل را دیدم که با کسی حرف میزد. مرد عینکی و جوان بود با کمی گوز. دستش را هم روی صندلی چرخدار ویل گذاشته بود. حالا خورشید بالا بود و من مجبور بودم چشمم را جمع کنم تا بتوانم آنها را درست ببینم. تازه به فایده آن کلاهای لب پهن پی بردم. مرد داشت می گفت ویل چقدر دالی که دوباره می بینمت دفتر بدون تو صفا نداره واقعا دیگه وصل قبلی است شبیه حسابدارها بود حسابدارها بودند که به کتش شلوار عادت داشتند و راحت بودند نظر لطفته که اینو میگی. جو بد جور بود انگار از سخر پر شدی پایین یه روز تا اونجا بودی و مدیریت می کردی یه روز ما باید همین که متوجه من شد سرش را بالا گرفت و گفت آه سلام لویزا کلارک این هم فردی درونت لیوان ویل را در جالیوانی صندلی سندلی گذاشتم و با مرد جوان دست دادم مرد زاویه دیدش را نسبت به خورشید عوض کرد دوباره گفت آه گفتم آه. یکی از دوستان ویل هستم بعد هم نفهمیدم چرا دستم را رو روی شانه ی ویل گذاشتم. فردی درونت با خنده‌ای که بیشتر به صرفه شبیه بود گفت: با همه این‌ها صاف ظاهراً زندگی خیلی هم بد نیست. با گفتن آن صورتش کمی سرخ شد. به باید معاشرت کرد. تو که این چیزا را خوب می‌دونی. اینم فرصتیه برای برقراری ارتباط شغلی تو جمع دوستان. ویل جدن از دیدنت خیلی خوشحال شدم و همینطور شما دوش زکی لرک خداحافظی کردیم و راه افتادیم گفتم ظاهرا آدم خوبی بود دستم را از شانه ی ویل برداشتم و لیوان را سر کشیدم خوشمزه تر از ظاهرش بود خیارش زیاد زیر زبانم نیامد آره آره بچه خوبیه با دیدن دست با هم نشد ویل سرش را بالا گرفت، نور چشمانش را میزد، نگاهم کرد و گفت نه، اصلا دستباچه نشد. حالا که فردی درون جلو آمده و با ویل احوالپرسی پرسی کرده بود، افراد بیشتری جرأت پیدا کردند و برای سلام و احوالپرسی پرسی آمدند. تا یک ساعت بعد، همینطور افراد مختلف نزد ویل می آمدند. برخی با فاصله می استادند. با این کار حتما مشکل دست دادن با ویل را حل می کردند. بعضی هم سر زانوی شلوارشان را کمی بالا می دادند و هم با صندلی چرخدار چنباتمه می زدند. من کنار ویل ایستادم. ساکت بودم و چیزی نمی گفتم. بعد دیدم با نزدیک شدن دو نفر از اولای ویل منقبض شد. یکی از آن دو نفر مرد قد بلند و سیگار به لبی بود که وقتی مقابل ویل ایستاد نمیدانست چه بگوید. آخر سر این جمله از دهانش خارج شد. چه عروسی خوبی نه؟ عروس هم حسابی خوشگل شده. لابد از گذشته خی آلیسیا خبر نداشت. دومی که رقیب تجاری ویل به نظر میرسید برخوردی سیاست مدارانه کرد. با این حال نگاه خیرش به ویل و سوالات بیپرده و شفافی که در مورد وضعیتش پرسید میدیدم ویل را عصبی کرده است. مثل دوتا سگی بودند که دور هم میچرخیدند و فکر میکردن آیا دندانهایشان را نشان بدهند یا نه وقتی سرانجام مرد دستکان داد و رفت ویل گفت مدیر عامل جدید شرکتی که کار میکردم بگم اونم فقط میخواست مطمئنشه که برنامهای برای خرید سهام بیشتر ندارم تا شرکت تو به کنترل خودم درارم آلیسیا این زیباروی آسمانی که در اطراف میچرخید و با شور و هیجان با افراد روبوسی هوایی میکرد، اصلا به ما نزدیک نشد. ویلد و لیوان نوشید. تماشایش می‌کردم و از ته دل خوشحال چهار بعد از ظهر صرف شد به نظرم زمان مناسبی برای نهار نبود اما همانطور که ویل گوش زد کرد جشن عروسی بود گویی زمان کش آمده بود با وجود این بیهوده و بیهدف سپری میشد. لیوانهای تمام نشدنی نوشیدنی و صحبتهای بی سر و ته گذر زمان را نامحسوس می کردند از گرما بود یا حال و هوای محیط که وقت سر میزمان رسیدیم احساس سرمستی میکردم وقتی دیدم با مرد مسن سمت چپم ورجی می کنم گفتم حتما مست کردم بعد از اینکه محتویات نمکدان را روی پایم خالی کردم از ویل پرسیدم نوشیدنی الکلی داشت به اندازه یه لیوان شراب توی هر کدوم با وحشت نگاهش کردم خودش هم متعجب بود شخی نکن میوه توش بود خیال کردم الکل نداره، حالا چجوری تا خونه رانندگی کنه؟ ویل گفت تو چه پرستاری هستی؟ ابرو بالا داد و اضافه کرد چی به میرسه اگه به مادرم خبر ندم؟ از رفتاری که ویل در طول روز از خود نشان داد شکه بودم فکر می کردم در طول مراسم ویل کم حرف می شود و اگر هم حرفی بزند فقط می خواهد متلک بگوید یا دست کم مهر سکوت بر لب برلب می زند. اما ویل از خود خوش روی نشان داد و با همه گرم گرفت. حتی وقتی هم سوپ آوردند اوقاتش تلخ نشد. معدبانه پرسید آیا کسی هست بخواهد نانش را با سوپ او تاخت بزند؟ دو دختری که در انتهای میز نشسته بودند ادعا کردند که گندم برایشان خوب نیست و نانشان را برای ویل فرستادند. هرچه نگرانی من بیشتر میشد که مستی چگونه میخواهد سرم بپرد، ویل بی و و سرخوش‌تر میشد. زن مسن سمت راست ویل نماینده سابق مجلس بود و در زمینه حقوق توانخواهان فعالیت کرده بود. از معدود افرادی بود که دیدم موقع صحبت با ویل زره ای هم معذب نیست. یک بار هم دیدم که باره رولاد دهان ویل گذشت وقتی زن لحظه میز را ترک کرد، ویل زیر لب گفت که او یک بار به کلیمانجا را سعود کرده است. ویل گفت آشق این جیگرای پیر هستم. میتونم با قاطر و بسته ساندویچ مجسمش کنم. قوی و محکم مثل پوتین های قدیمی. از بابت مرد سمت چپم شانسی آورده بودم. چهار پنج دقیقه فقط با من سوال جواب کرد که کی هستم از کجا آمدم و مهمان کدام طرف هستم؟ تا بعد فهمید حرفی برای گفتن به او ندارم که برگشت جالب باشد. صورتش را به طرف زن سمت چپش برگرداند و اجازه داد تا سرم را پایین بیاندازم و باقی غذایم را بخورم. نگرانیم رفته رفته بیشتر می شد و دلم به شدت شور میزد. یک دیدم دست ویل از صندلی کنارم جلو آمد و روی دستم قرار گرفت. سرم را بالا گرفتم و او چشمکی به من زد. دستش را گرفتم و فشردم. خوشحال بودم که میتواند حس کند. بعد ویل با صندلی چرخدارش چند سنتیمتری اقب رفت و من را هم وارد گفتگو با مری رولینسون کرد. ویل گفته که مسئولیتش با توه. چشمان آبی نافذی داشت. و چین و چروک هایی که نشان میداد تمام اون از پوست صورتش مراقبت شده است. نگاهی به ویل کردم و گفتم: تلاشمو میکنم.کلا در این زمینه کار میکنین ؟ نه، قبلا توی کافه کار میکردم. یادم نمیآید آن روز در عروسی این حرف را به کس دیگری گفته باشم. مری رولینسون به نشانه تایید سرش را تکان داد گفت؟ من همیشه فکر کردم که کار جالبیه، خصوصا اگه آدم دیگران رو دوست داشته باشه و کمی همسرش توی کار دیگران باشه، که من اینطوریم. ویل دستش رو از روی دستم برداشت. همش دارم لویزار رو تشویق میکنم کارهای دیگه ای هم بکنه. وسعت دید پیدا کنه و افق فکریشو گسترش بده. مری رولینسون از من پرسید، چیزی توی ذهن داری؟ ویل گفت <تصفح> نه چیزی تو فکرش نیست لویزا یکی از باهوشترین آدم که به عمرم دیدم ولی هر کاری میکنم نمیتونم یادش بدم که فرصتشو از دست نده مری رولینسون نگاه تندی به ویل کرد عزیزم ازش حمایت نکن خودش بلدی جواب بده پلگی زدم زن اضافه کرد فکر کنم تو خودت اینا رو بدونی ویل دهان باز کرد چیزی بگوید، ولی بعد دهانش رو بست. به میز چشم دوخت و کمی سرش رو تکان داد، ولی لبخند بر لب داشت. خب لویزا، به نظرم شغلت انرژی فکری زیادی ازت ببره. گمون نکنم این مرد جوون هم مشتری بیازاری باشه. <تصفيق> اره همین طوره. ولی حق با ویله که میه فرصتاتو از دست نده. این کارتم. من از بهیت مدیره سازمان خیریهی هستم که توی کار بازآموزیه شاید دوست داشته باشی بعداً دنبال کار دیگه ای بری. ممنونم. فلانک که از کار با ویل راضیه. با این حال کارتش رو داد و من هم گرفتم. ما تو مپوت مانده بودم. آیا واقعا زرهی برای این زن مهم است که من دارم با زندگیم چه می کنم؟ وقتی کارتش را گرفتم احساس دقلبازی کردم. حتی اگر هم می دانستم می خواهم چه ای ببینم، اصلا به هیچ شکلی نمی توانستم کارم را فل کنم. از طرفی هم در خودم نمی دیدم که بتوانم ادامه تحصیل بدهم. گذشته از همه اینها زنده نگه داشتن ویل اولویت زندگیم بود. چنان غرق در افکارم شده بودم که تقریبا حواسم به صحبت دو نفر کنارم نبود. چه خوب که مشکلاتو پشت سر گذاشتی؟ می چقدر عذیت شدی تا تونستی خودتو با شرایط جدید وفق بدی. نگاهم به ظرف قضا و تهمانده ماهی آپز بود. تا حالا ندیده بودم کسی با ویل اینطوری صحبت کند. ویل سگرمهایش هایش را در هم کشید و برو برو خیره شد. بعد صورتش را به طرف زن برگرداند و با لحن آرامی گفت. گمون نکنم و پشت سر گذاشته باشم. زن لحظه ای به او زل زد. کرد. نمیدانستم آیا چیزی از قیافم میخواند یا نه. دستش رو روی بازوی ویل گذاشت و گفت: ویل، هر چیزی به زمان نیاز داره. نکته ای هست که نسل شما به سختی میتونه خودش رو با اون تطبیق بده. شما همتون هفت ماهه به دنیا اومدین و با این توقع بزرگ شدیم که اوزا باید درجا و بر وفق مرادتون بشه. همه‌تون انتظار دارین زندگی طبق میلتون پیش بره، خصوصا مرد جوون و موفقی مثل تو. اما زمان لازم داره. ویل گفت. خانم رالینسان، اینسان، مری، من انتظار خوب شدن ندارم. منظورم جسمی نیست. دارم میگم آدم باید یاد بگیره که با آغوش باز زندگی جدیدش رو بپذیره. بعد همینطور که منتظر بودم ببینم ویل چه جوابی میدهد، صدای بلند ضربه قاشق به لیوان به گوش رسید. همه ساکت شدند تا به سخنرانی گوش دهند توجه چندانی به سخنرانی نکردم. مردها با شلوار مشکی و پیراهن سفید یکی پس از دیگری می آمدند و از افراد و مکانهایی حرف می زدند که برای من ناشنا بودند. حضار هم معدبانه می خندیدند. من نشستم و ترافل شکلات تل خوردم که با ثبتهای نقرهی سر میز آورده بودند. پشتش هم سه فنجان قهوه نوشیدم. به جز مستی، عصبی و مسترب هم بودم. ویل مظهر خاموشی بود. ساکت نشسته بود و به مهمانان نگاه می کرد که برای دوست دختر سابقش دست می زدند. به صحبتهای روپرت گوش داد که داشت از بینظیر بودن آلیسیا حرف می زد. کسی اتنایی به ویل نکرد. نمیدانم شاید می احساساتش را جریه دار نکنند. شاید هم حضورش در آنجا جدا مایی عذاب و ناراحتی بود. هاراسگاهی مری رولینسون سرش را جلو می آورد و چیزی زیر گوش ویل زمزمه می کرد. ویل هم سرش را آرام تکان میداد و تایید می کرد. عاقبت سخنرانی تمام شد و گروهی مستخدم آمدند و وسط سالن را برای رقص خلوت کردند. ویل به طرف من خم شد. مری گفته که توی این خیابون هتل خوبی هست. تماس بگیر ببین شو میتونیم بمونیم. چی؟ مری تیکه دستمال کاغذی دستم داد که رویش نام و شماره تلفنی نوشته بود. ویل آهسته طوری که مری نشنود گفت نگران نباش خودم بولشو میدم. تو هم دیگه نگران بودنت نباش. کارت اعتباری ما از توی کیف بردار. احتمالا شماره کارت میخوان. کارت را برداشتم. گوشی تلفن همراه همراه هم بردم و به آن طرف باغ رفتم. متصدی هتل گفت که در طبقه همکف دو تا اتاق موجود دارند. یکی تک نفره، یکی دو نفره. بله مناسب برای توانخواهان. گفتم: "آلی." وقتی نرخ هتل را گفت، به خودم فشار آوردم تعجبم را بروز ندهم. شماره کارت بانک ویل را دادم. همینطور که شماره را می‌خواندم، یک جورایی حس بدی داشتم. برگشتم. ویل گفت: "چی شد؟" درست شده اما به ویل گفتم دو اتاق چقدر آب خورده است؟ اشکاری نداره حالا به رفیقت زنگ بزن و بگو که شب بر نمی بعد هم یه لیوان دیگه بنداز بالا در واقع لیوان شیشام میشه که میخوری کلی کیف میکنم می بینم به جیب پدر آلیسیام هست می <تصفيق> و من هم گیلاس ها رو انداختم بالا آن شب اتفاقی رخداد نور چراغ ها را کم کردند در نتیجه میز کوچک ما کمتر دیده میشد اطر گل در نسیم شبانه به اوج خود رسیده بود از موزیک و شراب و رقص پیدا بود که به همه بسیار خوش خواهد گذشت هرگز ویل را اینطور آسوده خاطر ندیده بودم بین من و مری قرار داشت با مری گپ میزد و می خندید. ظاهر شادش موجب میشد مردمی که میخواستند چپ چپ نگاهش کنند یا نگاه‌های آمیز کنند حالا به او اصلا نگاه نکنند ویل به من گفت که اشار پرویشانم را شل کنم و صاف بنشینم کتش را درآوردم و کراواتش را شل کردم هر دو میکوشیدیم با دیدن صحنه رقص نخندیم زبانم قاصر است و نمیتوانم بگویم که با دیدن افرادی که چنین شیک و زیبا میرقصند چقدر حالم بهتر شد انگار مردها را برق گرفته بود. زنها انگشتشان را به طرف ستاره ها میگرفتند و حتی وقتی هم میچرخیدند و تاپ میخوردن کاملاً هوشیار به نظر می رسیدند. مری رولینسون چندین بار زیر لب گفت: «وای خدای بزرگ. نگاهی به من کرد: زبانش با هر لیوانی که بالا میاندخت تند و تیزتر میشد. لویزا نمیخواای بری و هنر نمایی کنی؟ وای نه واقعا آقلی رقصی به این افتضاحی ندیده بودم ساعت نه پیامی از نیتن داشتم عوضا رو به راه هست جواب دادم بله عالی شاید باورت نشود به ویل خیلی خوش میگذارد واقعا هم به ویل خوش میگذاشت میدیدمش که به حرف مری قشقش میخندد حس غریبی در من ایجاد شده بود این حس به من میگفت میشود امیدوار بود ویل می تواند شاد باشد اگر آدمهای درستی در اطرافش باشند اگر بگذارند همان ویل باشد نه مردی با صندلی چرخدار نه کسی که بیماریهای متعددی دارد کسی که مورد ترحم است و ساعت ده رقص آرام شروع شد روپرت را دیدم که آلیسیا را به طرف پیست رقص میبرد مهمانان هم دست می زدند. موهای آلیسیا اندکی ولو شده بود. دستش را دور گردن روپرت گذاشت. گویی به حمایت نیاز داشت. دست روپرت دور کمر آلیسیا قرار گرفت و او را به خود فشرد. آلیسیا زیبا و متمول بود. با این حال من یک جورایی دلم برایش می سخت. با خودم فکر می کردم احتمالا نمی چه چیزی را از دست داده. تا اینکه دیگر دیر شده است وسطهای آهنگ سایر جفتها هم به آنها پیوستند و عروس و داماد از میدان دیدم خارج شدند حواسم به مری رفت که داشت از مستمری پرستارها حرف میزد. بعد ناگهان سرم را بالا گرفتم و او را دیدم درست مقابل ما ایستاده بود منکنی زیبا در پیراهن سفید ابریشمی شمی هوری قلبم فرو ریخت آلیسیا با تکان سر به مری سلام کرد. کمی خم شد تا ویل بتواند صدایش را در میان همهمه موزیک بشنود. از عضلۀ صورتش کمی منقبض بود. به خودش فشار می‌آورد احساساتش را مهار کند. ویل، جدا خوشحالم کردی اومدی. نگاهی به طرف من کرد، ولی چیزی نگفت. ویل با ملایمت گفت: منم خوشحالم. آلیسیا خوشگل شدی روز بزرگیه صورت آلیسیا برقی از تعجب زد بعد هم حسی از افسوس دران نمایان شد واقعا؟ اینجوری فکر میکنی؟ فکر میکنم یعنی خیلی چیز که میخوام بگم ویل گفت <تصفح> نیازی نیست لویزا رو آره سکوت کوتاهی برقرار شد روپرت را میدیدم دیدم که کمی آن طرفتر این پا و پا می و با نگرانی به ما زل زده است آلیسیا صورتش را برگرداند و نگاهش کرد بعد دستش را جلو آورد و تکان داد. خب ویل به هر حال ازت ممنونم با اومدنت نشون دادی که واقعا بزرگواری برای آینه آره آینه خیلی ازش خوشم اومد سرپا شد و به طرف داماد رفت که دستش را گرفت و با خود برد می دیدم که به طرف پیست رقص می تو که آینه نخیده بودی؟ میدونم. آلیسیا و روپرت داشتن با هم حرف می زدند یکی دو بار نگاه روپرت به طرف ما چرخید ظاهرا باورش نمیشد ویل تا این حد برخورد خوبی کرده باشد البته خودمم باورم نمیشد. به ویل گفتم: "مربد شدی؟" به من نگاه کرد و گفت: "نه." بعد لبخند زد. لبخندش در اثر مستی کمی نامتعادل بود و چشمانش در عین حال که محسون به نظر می‌رسیدند، فکور هم بودند. پیست رقص خلوت شد تا رقص بعدی شروع شود. بیان که خود متوجه باشم دیدم دارم به ویل میگویم: ویل چی میگی؟ بیا یه دور برقصیم چی؟ بیا بیا سوجه دست اینگو ساله ها بدیم مری لیوانی برداشت و گفت اوه چه عالی فوق است ویل بیا تا موزیک آرومه چون فکر نکنم بعدش بتونی فرصت مخالفت به ویل ندادم با احتیاط روی پایش نشستم دستم را دور گردنش گذاشتم و خودم را جابجا به جا کردم. ویل لحظاتی به چشمانم زلزد. میخواست ببیند میتواند مخالفت کند یا نه. بعد به طرزی بسیار شگفتانگیز صندلی چرخدار را به طرف پیست رقص هدایت کرد و زیر نور سوسوزن توپای آینهی ای شروع به چرخیدن کرد. به شدت احساس اعتماد به نفس میکردم. از طرفی هم عصبی بودم. با که نشسته بودم دامنم بالا رفته بود. ویل زیر گوشم زمزمه کرد. بیخیال. این... کلارک ویل کن. حالگیری نکن. چشمانم را بستم و صدایش را می شنیدم که با موزیک زمزمه می کند. ویل گفت. هنوز می چشمانم را باز کردم و در نور ضعیف نگاهی به اطراف انداختم. دو سه نفر با حالتی تشویق‌آمیز لبخند میزدند اما بیشترشان نمیدانستند چه برخوردی کنند. مری تشویق کرد. بعد چشمم به آلیسیا افتاد که به ما ماتش برده بود. صورتش آویزان و وارفته بود. وقتی متوجه نگاه هم شد، صورتش را برگرداند و چیزی به روپرت گفت. روپرت هم سرش رو تکان داد. طوری که انگار ما داشتیم کار زشتی انجام میدادیم حس کردم لبخند شیطنت آمیزی بر لبم خزید. گفتم آره بیا چراتر <تصال> اگه کمی به طرف چپ بچرخی من میافتم ویل تغییر مسیر داد. کمی خودم را عقب کشیدم تا نگاهش کنم. اصلا متوجه خودم نبودم. بیل به من نگاه کرد البته از حق نگذریم در وضعیتی که من نشسته بودم جز من را نمیتوانست ببیند نگاهش را از من برگرداند و ابرو بالا داد با خونسردی تمام نگاهش کردم اگه توی صندلی چرخدار نبودی عمرن اگه به من نگاه میکردی نه اینطور نیست حتما نگاه میکردم سرد با مهمونهی دیگه کرد کسی که آدم از چیل قدمی متوجهشون میشه. ملم اون طرف برای خودم میپلکیدم. کسی که اصلا دیده نمیشد. ویل پلکی زد. گفتم. درست میگم نه؟ ویل به طرف بار نگاه کرد. بعد صورتش را برگرداند به سمت من. آره کلارک. در دفع از خودم باید بگم. الاق بودم. زدم زیر خنده. چنان به قهقه افتادم که توجه همه جلب شد تلاش کردم خودم را جمع جور کنم منمن کنن گفتم <تصفيق> آه ببخشید بکنم خنده حسابی بود <تصفيق> یه چیزی ها میدونی؟ تا آخر شب می توانستم به همان حال باشم و نگاهش کنم حالتی که گوشه چشمانش چین افتاده بود جوری که گردنش کت شده بود چی؟ یه لارک گاهی تو تنها انگیزه هستی که صبح به امیدش چشباز میکنم پیش از اینکه بفهمم چه میگویم کلمات از دهانم خارج شد پس بیا بریم سفر ها؟ بیا بریم سفر بیا یه هفته بریم جایی خوش بگذرونیم من تو بدون این اینگوساه ها؟؟ آره، اینگو ساله ها. ویل بیا بیدیم. چشمش به نگاه هم گره خورده و همین طور به من زل زده بود. نمیفهمیدم دارم چه میگویم. اصلا نمیدانستم این حرف از کجا آمد. فقط میدانستم اگر نتوانم در آن شب با آن ستاره ها و گل های معطر و خنده ها و مریب بله را بگیرم دیگر هیچ وقت نمیتوانم لطفا لحظاتی که منتظر ماندم تا جوابم را بدهد هنگار صد سال طول کشید گفت